ال الرحمن وهو خير والسلام اشرف والمرسلين. اله الله البيت البيت البيت من الى قيام شیخ میگم الله یعقوب الکرمین. و ایضا قرائت القرآن افسترید بالله من الشیطان الرجیم. این آیه قرآن رو ما دستور میده هر وقت خاص کتاب آسمانی رو بخونیم و قرآن رو قرائت کنیم اول باید از وساویس و شر شیطون به خدا پناه ببریم بعد بخونیم رمزش خدا در قرآن کریم از یه واقعیتی خبر داده و اون واقعیت اینه که اینهو لکم ادوب مبین شیطون دشمن آشکار شماست هیچ خیر شما رو نمیخواد یکی از بهترین خیرخواهی های خدا هدایت انسان هاست حرفایی که به منظور هدایت آدوا در قرآن کریم زده این خیر انسانی دیگه یعنی شیطون دشمن این خیر. وقتی خدای بتال شروع میکنه در قرآن کریم با ما بانوان خیرخواه صحبت میکنه او نمیخواد. یعنی سعی میکنه تمام حرفایی که خدا بامیزنه ما زیر پا بذاریم، گوش ندیم لذا خدا دستور داده اول به من از شل و پناه ببر، بعد بخون اگه این کار نکنی؟ کاری میکنه که هیچ عمل نکنی به حرفای من چون خدا در قرآن کریم با آدما حرف میزنه میسین که با ما رو برو داره میگه آه این کار رو نکن، این کار رو بکن، اونجه بار اونجه نرو کارایی که در زندگی انسانی لازمه میگی انجام بده کارایی که برایش بزرگه میگه انجام نده این هره میگه اونم اونجا منتظره هرچه او گفت این کاری کنه ما گوش ندویم اغلب مردم گوش به حرف خدا نمیدن نکتش اینه شیطان وقت دیدید خدا میگه نماز بخوا سعی میکنه که کاری کنه نماز نکنه وقتی خدا میگه روزه بگیر یک کاری میکنی که روزه نگیریم سایر واجبات و محرمات هم همینجوره آدم رو بسمسه میکنه و واجبات رو ترک کنه کارهای حرام رو انجام بده لذا پناه بردن به خدا این معنا رو تلقین میکنه به ما که معلوم میشه این آدم ناجوریه که خدا میگه از شر رو به من پناه ببر این کم کم دشمنی او رو در دل ما واضح و روشن میکاره اما خیلی الان دوستن حالت دشمنی ماش ندارن هر وقت میخوام قرآن بخونه در پناه ببره به خدا از شر او ای تلقیل میکنه که ما آدم شریه خیلی طوری نمیخواد این تلقیل باعث میشه ما آرام آرام باور کنیم که دشمن ماست وقت به وسبسه هاش ترتیب اثر لدیم به همجور بخونیم اون دشمنی فایده نمیشه؟ کارشه میکنه با بر برخ خدا نمیده بله این همه قرآن خونده میشه کی عمل میکنه؟ نشتش همینه نمیذاره بله چون او حرفی میزنه که اگر ما انجام میدیم به نفعمونه مونه به نفع جامعه اصلاح پیاده میشه در جامعه اونم میخواد خواد مردم عموماً حرف خدا رو پا بذرن اونی که خدا میخواد دیشنه نیاد. رضا از اول خدا فرموده اعلام کرده که این نهو لکم عدم و شیطون دشمن آشکار شماست کاری نمی میکنه علالی پدر مردم و در این پراه به خدا بردن از شهر شیطون با اسمشه بنا تلقیل میشه که این موجود شهر داره ازش باید فرار کنی این مجرد میشه کم کم ما باشه بد باشیم دشمن باشیم از سر شیلی که گوش به بسه ندیم ببینیم خدا در باره خیر ما چی خواسته و چی گفته وقت این چرا خدا توفیق عمل میده بعد عمل میکنیم امیدواریم خدای متعال بهممون توفیق کرا باید کنه اول به عنوان اینکه او دشمن ماست کاری کنیم و در ما معصیر واقع نشه بعد حرف خدا رو بخونیم هر چی گفته عمل کنیم انشالله هم به نفع فرد و هم به نفع جامعه از امیدواریم خدای معتلین توفیق و مرحمت کنه هم با او دشمنی کنیم و هم کشمعرف خدا بریم انشالله دسار عرمای طیب خاتم هم بیا و انبیاء هم و همه حضرات و منصومین علیه است و همه شهدهی خط تشجیع به امام شهده سه سلامات خیلید <تصفح>